میمون و گراز نر سالهای سال پیش در استان شینشین ژاپن مرد دوره زندگی میکرد که زندگیش رو از راه این و ور رفتن و نمایش شیرین میمونش میگذرد یه شب مرد که حسابی اوقاتش تلخ بود به خونه اومد و به زنش گفت بقصاب پیغام داده تا فردا اول صبح بیاد اونجا زن وحشت زده پرسی قصاب برای چی مرد گفت این میمون دیگه به هیچ دردی نمیخوره از بس پیر شده تمام شیرینکاریاش یادش رفته تا میخورد با عصا کتکش زدم اما فایده ای نداشت حالا خیال دارم اونو به قصاب بفروشم تا چند سکه ای هم گیرمون بیاد. زنگ دلش حسابی به حال اون حیوان زبون بسته سوخته بود به شوهرش التماس کرد از گناه میمون بگذره. اما هرچی التماس کرد فایدهای نداشت. مرد تصمیمش رو گرفته بود. اما بشنوید از میمون که از توی اتاقی کناری کلمه به کلمه حرفای اونها رو شنیده بود. وقتی فهمید صاحبش چه خوابی براش دیده با خودش گفت واقعا که چه آدم بیرحمی. سالهای سال از جون و دل بهش خدمت کردم. حالا به جای اینکه به حال خودم منو بذاره تا بقیه عمرم و توی آرامش باشم میخواد منو بده دست غصا؟ یعنی حق من اینه که بدن نازنینمو بپزن و بخورن؟ وای به حالم. حالا چه خاکی به سرم بریزم؟ آهان فکر خوبی به سرم زد. یه گراز نر رو میشناسم که همین نزدیکی ها توی جنگل زندگی میکنه. شاید اگه پیشمون برم و براش تعریف کنم که توی چه سری افتادم راه حلی پیش پام بذاره و یه راهی نشونم بده آره بهتره تلاشم رو بکنم نباید وقت رو هدر میداد میمون یواشکی از خونه بیرون خزید با سرعت به سمت جنگل رفت تا گراز نر رو پیدا کنه گراز توی خونش بود تا میمون به اونجا رسید شروع کرد به تعریف قصه پرقصه زندگیش گراز نازنی شنیدم تو خیلی عاقل و خردمندی من توی بد درد سری افتادم فقط تو میتونی کمکم کنی من پیر شدم دیگه نمیتونم انتظارهای اربابم رو برآورده کنم حالا چون نمیتونم خوب شیرین کاری کنم اون میخواد منو به قصاب بفروشه به نظر تو من چیکار کنم من میدونم که تو چقدر زیرک و عاقلی گرازی که از تعریف و تمجید میمون خوشش اومده بود تصمیم گرفت به اون کمک کنه کمی فکر کرد و عاقبت گفت صاحبت بچه نداره؟ میمون جواب داد. البته که داره، یه بچه شیرخوره داره. گراز گفت، صبحا قبل از اینکه صاحبت بره سر کار، زنش بچه رو کنار در میذاره دیگه نه؟ خب، من صبح زود میام و گوشهی منتظر میمونم تا فرصتی پیدا کنم. اون وقت بچه رو میزنم زیر بقلم و بودو فرار میکنم. میمون گفت خب بعدش چی؟ چی کار میکنی؟ هیچی دیگه. اون وقت مادر و فریادش بلند میشه. تا اونها به خودشون بیان تو هم باید دنبال من بودویی. بچه رو از دست من نجات بدی و صحیح و سالم برگردونی پیش پدر و مادرش اون وقت میبینی که وقتی قصا بیاد اونا دیگه دلشون نمیاد تو رو بفروشن میمون چند بار از گراز تشکر کرد و به خونه برگشت حتما خودتون هم حد زدید که میمون اون شب تا صبح خوابش نبرد. مدام به فردا فکر میکرد زندگی و مرگش بستگی به موفقیت نقشه گراز داشت صبح میمون زودتر از همه از خواب بیدار شد با نگرانی منتظر موند ببینه چه اتفاقی مییفته با اینکه خیلی طول نکشید اما به نظرش ساعتها گذشت تا آقه بعد صاحبش از خواب بیدار شد و پرده ها رو کنار زد تا نور خورشید وارد خونه بشه خوشبختانه همه چیز طبق نقشه گراز پیش رفت مادر مثل هر روز بچه رو نزده که در خونه گذاشت و خودش سرگرم آماده کردن صبحونه شد بچه زیر نور آفتاب صبحگاهی با خوشحالی داشت برای خودش اونگ اونگ میکرد. با حسیری که آفتاب اون رو سایه روشن کرده بود بازی میکرد و به اون چنگ میندهد. ناگهان صدایی از بیرون خونه بلند شد. بعد صدای گریه بچه به گوش رسید. زن از توی آشپسخونه شوهرش رو صدا زد. بعد خود زن و شوهر که هنوز خوابالود بودن دوتایی به طرف در خونه دویدن. تازه اون موقع دیدن گراز بچه رو زده زیر بغلشو و دوون, دوون به طرف جنگل میره. بعد هم میمون رو دیدن که داشت با تمام توان دنبال گراز میدوید. زن و شوهر از دیدن رفتار شجاعانه میمون اونو تحسین کردن. وقتی میمون وفادار بچهشون رو صحیح و سالم پیش اونها برگردون، نمیدونستن چجوری از اون تشکر کنه. زن گفت، بفرما، این همون حیوانیه که میخواستی بکشیش. اگه این میمون اینجا نبود، بچه رو برای همیشه از دست داده بودی. مرد بچه رو توی آغوشش گرفت و جواب داد. حق با توست زن وقتی قصاب اومد باید اونو بفرستیم و بره حالا برو یه صبحونه مفصل برای خودمونو میمونمون آماده کن قصاب که اومد مرد به اون گفت نظرش عوض شده و ازش خواست برای شام شبشون کمی گوشت گراز بیاره میمون که حالا خودش رو توی دل صاحبش جای کرده بود بقیه عمرش رو توی آرامش و آسایش گذرود صاحبش هم دیگه هیچ وقت اون رو کتک نزد سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها طبیعت های زیبا و نایاب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 ادساین مهران دوستی